اولا این اختلاف اینجا بود یا قبلها بوده و قبلیها چبونی عمل کردن اختلاف روایت از پدر اسلام بوده زمان صحابه کرام بوده صحابه کرام با هم صورتا مختلف و احادث مختلف عمل می کردن انصار بر یک چیزی عمل می کردن بر مسئله بعدی عمل می همه اینها از نبی کریم ثابت بود کس این قول نبی کریم میگره؟ کس اون قول نبی کریم میگره؟ اما هم دیگر رو جبه متهم نمی به دروغ، به ترک حدیث، به بدعات یا به خرافات، اتهام اون جهان نبودم. میگفتن حالا خودید بهتر میدونی، من این جوری شنیدی، من این جوری با هم دیگر این چیزها بودم، اما یه نقطی حالا بعدها تدوین مذاهب شده. و تدوین فق شد تدوین مسائل شد اینها ها چگونه عمل کردند حالا وقتی که تدوین شده هدف هر یکی از ائمه و از مجتهدین مشت... این بوده که من بر عمل نبی کریم صلی الله علیه عمل بکنه همون چیزی که نبی کریم گرفتن همون چیزو بگیرم و بر همون عمل بکنم هیچ کس از اونها نبوده که من از هوای نفس عمل بگیرم. همین گفتم که نویکری چگونه کرده، من خود را به نویکری تر کنم. آمادهی حدیثی را با تمام دلایل شواهد بررسی کردند و اون چیزی که با دلایل و شواهد نزدیک بوده، اون رو و بر آن عمل کردند. تا اتهام بر اونها نیاید. حالا بحثی که حالا چرا از یک مذهب پیروی کنی چرا از همه تغرید نکنی یک اسقاله هست همیشه در ذهن ها میکنن؟ چرا بر یک مذهب عمل کنی مذهب مل اونها دروغ میگن مغیرها اشتباه میکنه مگر شافعی اشتباه کرده مگر احمد اشتباه کرده مگر مالکی اشتباه کرده رحمهم الله اشتباه نکردن اما این که تو چرا بر این عمل میکنی تو چرا وقتی کی بیگیری به خاطری که تو مالک نیستی؟ تو احمد نیستی، تو شافعی نیستی، تو ابو نیستی اگر علم امام بونه راوردی، اگر همون درک امام شافعی راوردی به اشتخاب بانند امام احمد ابن حنبر رسیدی، هزار حدیث را حافظ بودی، از کس تغلیب نکن اگر اونها نمی کردن اونها همیشون مشتحید بودن، همیشون حافظ حدیث بودن برای اونها دیگر تعلیج جایز نبود، اما نیستی مگه علم تو از امام موزنی بیشتر است، مگر علم من تو از حافظ دیبنهردار که حافظ دل حدیث و شاعریه سعی بخواهی از بیشتر است، مگه علم من تو از الله ام اینی که حافظ دل و شاعریه تمام کتب حدیث است بیشتر است که دنبال امام ابوهندیف می روند، مگه علم من تو از امام دارو قطنی که حافظ دل است بیشتر از دنبال امام شافعی می روند. باقی علما تو از امام مسلم بیشتر از دنبال امام شافعی رفته باقی علما شما از امام ترمذی امام ترمذی بالغ تراپ کتاب حدیث است که مرزای امام شافعی رو ترجیح میدهند باقی علما من و شما از امام ابو داوود بیشتر از دنبال امام احمد بن حنبل رفته باقی من و شما از امام طهاوی بالاتر با از دنیا رو با علمش سیراب کرد در عقیده و در حدیث و کتابی رو در انتصار مذهب و هلل کرد دوجور دیگه از خیمه کتاب حدیث کم کمپایه با نسبایی و تا است اونها رو نوشت مگر نمیفهمید اونها میفهمیدن. چرا اینها دنبال مذاهب رفتند و نگفته یکی از اینجا برمیاد یکی از اونجا چونها میدونستان اجتهاد کار اونتون نیست فن میخواست، صاحبی فن میخواست و خدا و امر الیحیتی است که فصل و اهل ذکر الکن تولاتعالمون بپرسید از علما چه بی عمل بکنید چون نمیدونی شما بعد این است که هر عالمی و هر مجتهدی سعی کرده کدام قول به نبی کریم نزدیکتر است همون رو بگیرم برای خودش قانون تصنیف کرده برای خودش اصول و تدوین کرده بر همون اصول گرفت اون را عمل کرد این جور نرو که هواپرستی هو نفس باشه اینجا اینجوری نیست ما داریم اشتباه می کنیم حالا به طور مثال ما در فن حدیث بالاتفاق تمام علمای حدیث محدثین میگن که حدیث بردن و نوع حدیث صحی بر است معمول بهی و غیر معمول بهی حدیثی بران عمل شد و حدیثی بران عمل نشد حدیث صحی بود اما عمل نکرد بود دوباره مشغول شد خود نبی کریم تا آخره بر آن استمرار نداشتند صحابه بر آن عمل نکردند خلفا بر آن عمل نکردند این میشه غیر معمول بی بود اما مشغول شد این حدیث معمول بی تھا نا کہ سنی جو حدیث اس یہ نشو مدرے برای تو حدیث اس امائے حدیث صحیح است حدیث اما امائے حدیث معارض دارا دینا دارا حدیث تاک آئید بر این حدیث عمل شد یا نشود؟ تشخیص این کار علماء وشد دیدینه کار منو تو نیسیم تشخیص بدین چجوری هست یک حدیث حاکم قرار نمی گیره اگر این جوری باشه این حدیث براشو امی خانا داخل صحیح مسلم و صحیح بخاری حدیثی هست که حضرت زبیر بن عوام رضی الله تعالی نو زمینی کشاورزی داشت با ایک انصاری زمینها همسایه بودن بغل بغل بودن آب وقتی که میام از طرف شمال، از جانب زبیر میام اول زمین زبیر بو، از آب. و پایین سر زمین انصاری بو. انصاری پیش نبی کریم میگو فیار استور الله صلی الله عليه و سلم. به زویر اب نه اول تسرامیت بگو. بزار اول من آب یاری کنم، باز زبیر آب یاری کری. آب در از دنیال از چی میاد؟ زمین زبیر هم اول هست. گفته بذار اول بیا پایین، من آب بگیرم، باز زبیر بگیره. اینکه خلاف عقل بود، خلاف قانون بود، خلاف عرف بود. نبی کریم فرمودن زبیر تو آب اول بگیر تو زمینده اول است اما وقت آب به ته زمین رسید کافی است. بیزار آب پای بروی هم سایت، هم سایت بود، هم که ها پیسرم بود پارت واضی کردی. نبی کریم آره شد رنگ نبی کریم متغیر شد. خیلی آسمانی شد. فرمودن زبیر آب رو کامل بگیر بی بیزار آب کامل پا تا زمین دست. بد حالا کذومی که از این حکم شریعت بود، اولی حکم شریعت بود، دورخ دو شریعت بود. قدوم بود حکم شریعت؟ این تشخیص طلباب بود. نبی کری اون چیزو برات چی گفتم؟ اولی به خاطر منصب امامت بود، مصالحه بود گفت آره اینجوری سوال کنی شما، تو هم بگی هم راضی باشه. وقتی که اون ناراضی شد، فوراً حکم شرعی رو ابلاغ کردن. فرمود حق تو این آباد آ تا آخر بره و کام زمین پر باشه. بعد راهو این که تشخیص بده کدومی کی حکم شعری بوده کدومی کی بنابر مسلحت بوده کدومی کی بنابر منصب امامت بوده کدومی کی بنابر منصب قضاوت بوده این که تشخیص میده؟ علماء تشخیص میدن مشهدین تشخیص میده کار منتونیس این که هم فکر می کو اللہ حدیث گرفتی پس اگر حدیثی بود و او حدیث صحیح بود اما عمل برآن استمرار نداشت و رها میکنن. مثلا حدیث تهی داری، این بابی که منسوخ باشند، این نه حدیث هم منسوخ شده ام. قرآن هم منسوخ شده بعضی آیاتشون. شد. ما نه استخ من آیات آن نه است. یا نه اتی من ها مثل خدا خداوند متعال میکنن. بعضی آیاتو منسوخ میکنن. اهادیس هم منسوخ شدن، بودن متروک شدن. مندی که اول کسی غذای میخورد با آتش پخته شده بود، بعد ازو میگیرد. رها شد حدیث صحیح صحیح هم هست کسی بگی که من بارین عمل میکنه؟ کنم اگر کسی با مقاربت می کر و دخول صورت می اگر انزال نمی شد غوث نداشت حرق غوث واجبه هر تستهی صحیح حدیث است در بخار مسلم وجود داره. حالا مادی دیفور حدیث دو خوق صابر کنیم فسدی سی باشه صحیح باشه معمول بهی باشه معارض داشته نباشه اون وقت عذرت قرار میگیره صحیح باشه معمول به باشه معارض نداشته باشه این کار منتون نیست حالا بعضی میگن آقا ما خودما میرویم حالا میبینی کدوم حدیث درستتر هست اون می میگیریم خود چار مذهب دارید میبینی کدون درست هست میگیرین از کجا می درست تر از کجا میدونی میگه میپورسه می از اول وقتی میپورسی از کجا میاد دا این در راست بیگی از کجا میاد این در راست بیگی وقتی خودت میدانی پرسیدن خطا هست وقتی میدانی اینجوری فورسیدن تو خطا هست پس باید به نقطه اولیت چرا فورسیدی هوای وقتی میدانی باید نپرسی چه وقتی نمیدانی باید پرسی وقتی نمیدانی باید بدانی این حدیث اموال شود یا نشود از کجا میاد این قوی تر هست تشخیص این کار سختی هست پس این باید بعد اعتماد باشه بر اولامای ربانيان که مورد تأیید سلف صالح هستند. این از کجا میگیم؟ از قرآن میگوییم. خداوند متعال میگوید اعتماد بکنید. و بر اونها اطمینان داشته باشید و عمل بکنید. فلا اولار نفر کل فرقه تائفتام لیت فقه فدی. یه گروه علم حاصل بکنه. و تفاق و حاصل بکنه و بی آی مردم را متنبه بکنه و مردم از اون یاد بگیره بر اون هر میگی عمل بکنه خود طرف پر اشابه کنه جهان داره به ایک سوی بسیار خطرناق داره میره بایی کارهایی که مروس شده هر کس داره در مورد حدیث نظر میدهد به دیمار سیده دی این که کسی که یک کلاسا سواد عربی نداره صاحب ندار در خود علم و شده هر کسی, هر کسی کسونا کس در شریعت هم صاحب نظران هم مشتایدن چرا این همین جرأت در دین پیدا شده این به این نمیگن تحقیق به این نمیگن تخصص به این نمیگن علم این میگن آزادی هواپرستی فرار از دین فرار از عمل از دین اونها رفتن و با شدن دنیا داره باخون آلوده میشه در جهان و خون میشورن ما درو به سالی جزئی داری نمی جنگیم علوم مستحبه داری جنگیم دار فقط ف داره صادر میشه هم دیگر کافر می‌کنن این تعالیم عالیم نبی کریم این صورت نبودن پس لزوم کار شما نیست هر جا حدیثی دیدی خلاف اون ایده شما بود ایده مبدل شما بود فوراً تحقیق کری چرا این هست چرا این جوریه بعد اگر جواب نبود بعد ببینید چرا این جوری طرد کردن قابل درست اگر هر چیزی دیدی اسن سرگردان میشه همه از نبی همه صابته این هم ثابته اون هم ثابته همی ثابتن پس روزی بر این عمل کن روزی بر اون عمل کن چون ثابتن چیم این سرگردان ده شهر اینجوری نگوده فقه ها آمدن با اصولی تدبیه کردن خواستن مذهب درست و چیزی کنیدی که نزدیکترست اون رو بگیرن همه کار تلاش رو همین بوده در نزد بعضی این مسئل نزدیکتر بود در نزد بعضی اون نزدیکتر بود نکردن.